داستان دو اژدهای های پکنی روزی روزگاری شاهزاده بسیار فقیر به دهقانهای های دست حکومت می کرد دهقانها توی کلبه های چوبی میون مزاره خشک و غبار لود زندگی می‌کردند. اسم اون شهر کوچیک و غمناک پکن بود شاهزاده آدمی خوش قلب و با اراده بود رویاهای بزرگی توی سرش داشت. دلش میخواست پکن تبدیل به شهری با شکوه و زیبا بشه اولین کاری که کرد این بود که آستینش رو بالا زد و دوش به دوش مردا و زنا و بچه های شهرش دیواری محکم با دروازه های بزرگ به دور شهر ساخت تا جلوی راه زنها رو بگیره مردم خیلی خوشحال شدند اما اونها نمیدونستند با سر و صداهایی که برای ساخت دیوار به راه انداختند مزاحم دو تا اژدها شدند که از هزاران سال پیش در غاری زیرزمینی به خواب رفته بودند حتما خودتون میتونید تصور کنید که وقتی دو تا اژدها از چرت شیرین و طولانی بپرند چقدر عصبانی میشن اجده های اول خورناس کشید و گفت این آقای شاهزاده فکر کرده کیه؟ کی بهش اجازه داده مردمش رو رابندازه بیان پشت در قاره ما و اینجوری سر و صدا رابندازن دوم هم گفت بیا که درس خوبی بهشون بدی شب که شد دو اجده ها وردی خوندن و خودشون رو به شکل پیر پیرزن و پیرمرد در آوردن. اونها با استفاده از جادو و جنبل بدون اینکه ها متوجه بشن از تمام دروازه ها و درهای قفل قصر گذشتن. وارد قصد شدن و خودشون رو به اتاق خواب شاهزاده رسوندن. اون پیرمرد و پیرزن پر از چین و چروک سرشون رو بیخ گوش شاهزاده بردن و پرسیدن ای شاهزاده یه خیرتمند و بخشنده ما اومدیم از شما اجازه بگیریم میخوایم شهرتون پکن رو ترک کنیم اجازه میدید موقع رفتن دو تا سطل آب هم با خودمون ببریم شاهزاده توی خواب قلتی زد و منمن کنان گفت اه البته که میتونید پیره مرد و پیر زن با خوشحالی راهی رودخونه شدن. رود رودی باریک و پر از گل و لای بود. اما منبع اصلی آب نوشیدنی مردم پکن بود. اونها سطلاشون رو توی آب فرو کردن و یه وردی خوندن. یکی دو دقیقه ای که گذشت رودخونه خشک خشک شد. انگار نه انگار که اونجا آبی بوده. چون سطل اون دو تا اجده ها از اون سطلا معمولی نبود، سط جادویی بودند میشد آب یه رودخونه یا حتی یه اقیانوس رو توی اونها جا جاداد. بدون اینکه اندازه سطل بزرگ بشه، پیرمرد و پیرزن سطل رو برداشتن و به سراغ چشم شهر رفتن. چند دقیقه بعد؟ تموم آب چشمه رو هم توی سطل هاشون ریختن و به جای اون گودالی لالود باقی گذاشتن. بعد به سراغ تک تک خونه های شهر رفتن و آب سطل مردم رو تا قطره آخر توی سطل خودشون ریختن. بالاخره در حالی که کمرشون زیر سنگینی سطل خم شده بود از پکم بیرون رفتن. تا زمان طلو خورشید دو اجه های بدجننس فرسنگ ها از اونجا دور شده بودند وقتی مردم بیدار شدن و فهمیدن که حتی یه قطره آب هم توی پکن پیدا نمیشه فریاد های وحشتشون به آسمون رفت. چیزی یسشت که مردم شهر هاهه پشت دروازه قصر شاهزاده جمع شدن و فریاد زدن. حالا چیکار کنید؟ لب هامون ترک برداشته آبی نداریم تا برای صبونه برنج بپرزیم. محصول هامون چی؟ جلوی چشمامون داره زیر نور هفتاب خوشک میشه. شاهزاده که بوی خیلی بدی به دماغش خورده بود بینیش رو جمع کرد و آهی کشید و گفت وای خدای من حتما امروز صبح هیچ کدومتون نتونستید خودتون رو بشورید درسته؟ مردم پا به پا شدن و با صورتهایی که از خجالت قرمز شده بود سرشون رو پایین انداختن. ناگهان شاهزاده خابی رو که دیده بود یادش اومد. اون به جادو اعتقاد داشت. برای همین خیلی به اون موضوع مشکوک شد. یه راز به دیدن مشاور پیر وفادارش رفت. مشاور پیر وفادار با شنیدن حرفهای شاهزاده گفت آها فهمیدم پیرمرد لبخندی زد انگار از چیزی خبر داره بعد در حالی که پشت سر هم انگشتش رو تکون می داد، به بشاسته گفت هرچی هست به اون غار های بیرون شهر مربوط میشه هر دو به سراغ قار رفتن وقتی مشاور پیر و وفادار دید که قار خالیه گفت که اینطور انگار که موضوع رو فهمیده باشه شاهزاده که کم و بیش عصبانی شده بود جواب داد زودتر بگو موضوع چیه پدرم موضوع این قار رو به من گفته خود اون هم از پدرش شنیده بود پدرش هم از پدرش شنیده بود پدر اون هم از پدرش شنیده بود تا شاهزاده با بیقراری وسط حرفش و گفت خب خب رو بگو بغیاش اینطور که معلومه این دوتا اجده ها زیاد از ترهای تو برای آباد کردن این شهر خوششون نیمده. برای همین آبهای شهر رو برداشتن و با خودشون بردن. شاهزاده گفت تا نیزه و اسبش رو براش بیارن. بعد به تاخت را افتاد و ابری از گرد و قبار پشت سرش به جا گذاشت. مسافران زیادی توی جاده در حال رفت و آمد بودند اما شاهزاده بدون توقف فقط نگاه گذرایی به اونها میانداخت بعد چهار نعل به راهش ادامه میداد سرانجام بعد از ساعتها تاختن چشم شاهزاده به پیرمرد و پیرزنی افتاد که در خواب دیده بود شاهزاده فوری دهانه اسبش رو که نفس نفس می زد کشید فریاد زد، من به یه پیرمرد و پیرزن اجازه دادم که دو تا سطل آب از شهرم ببرن، نه به دو تا اجره ها که شما باشید. بعد نیزش رو به طرف سطل که اونها توی دستشون داشتن پرتب کرد، بیدرنگ آب با فشار از سوراخ سطل بیرون ریخت. پیرمرد و پیرزن زن با نعره‌ای که مو به تن آدم راست میکرد جلوی چشمهای وحجت شاهزاده دوباره به شکل اجده در اومدن. اما قبل از اون که اون دوتا جانور و خودم با نفسهای آتشینشون بتونن کاری بکنن. آب روان گرداب مانندی اونها رو برداشت و با خودش بود. فشار آب، شاهزاده و اسبش رو هم به طرف دیگه ای بود. به زودی پهناور اطراف اونجا رو فرا گرفت. اما اسب شاهزاده خودش رو روی سخره بلندی بیرون آب کشون سخرهی که تا همون چند دقیقه پیش کوهی بسیار بلند بود. شاهزاده که سر و پا بود اخ کرد و گفت خب حالا باید چیکار کنم ناگهان شاهزاده صدایی شنید من به درگاه خدا دعا می کنم که کمکت کند شاهزاده با تعجب به اطرافش نگاه کرد و دید یه راهب ساکت و بیهرکت گوشه نشسته راهب حتی متوجه شاهزاده نشده بود اون چشاشو بست سرش رو پایین آورد و دعا کرد. همون موقع آب ناپدید شد و شاهزاده نفس راحتی کشید. از راهب تشکر کرد و چار نر به طرف پکن برگشت. وقتی به دیوار محکم و بلند شهر نزدیک شد، مردم با چهره های خوشحال از دروازه بیرون ریختن و فریاد زدن. باورتان نمی شود، آب شهر برگشت اما خبر خوبی هم دارین یک چشمه جدید هم درست شده این چشمه رود را از آب شیرینی پر کرده که مثل شیشه شفافه تا حالا کسی چنین آبی ندیده به برکت اون چشمه جادویی، زمین های اطراف پکن به دشت سرسبز و زیبا تبدیل شد شاهزاده ترهاشو به اجرا گذاشتو پیکن رو به یکی از با شکوه شهرهای جهان تبدیل کرد اون دو ها هم دیگه هیچ وقت اونجا برنگشتن. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و ناب،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 ادساین مهران دوستی